طریق هدایت بسم الله الرحمن الرحیم با قسمت نوزدهم از مجموعه گفتگوهای صوتی طریق هدایت در خدمت شما شنوندگان گرامی هستم این مجموعه گفتگوهای صوتی به بررسی آیات قرآن میپردازد در این راستا برنامه 19 هم رو به موضوع مسیح عیسی بن مریم اختصاص دادم تولد مریم صدیقه مادر عیسی بن مریم سوره آل عمران آیات 33 الی به یقین الله آدم و نو و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان فضیلت داده است. فرزندانی که بعضی از آنان از نسل بعضی دیگرند و الله شنوای داناست. آنگاه که همسر امران گفت پروردگارا، آنچه در شکم دارم نظر تو کردم آزاد برای تو پس از من بپذی که توی شنوای دانا پس چون فرزندش را بذاد گفت پروردگارا من دختر زادم و الله به آنچه اوضایید داناتر بود و پسر چون دختر نیست و من نامش را مریم نهادم و او و فرزندانش را از شیطان رانده شده به تو پناه میدهم پس پروردگارش مریم را به نیکی پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرار داد هر بار که زکریا در مهراب بر او وارد میشد نزد او رزق و روزی خاصی می یافت زکریا گفت ای مریم این روزی از کجا برای تو میرسد او در پاسخ می گفت این از جانب الله هست که الله به هر کس بخواهد به شما روزی میدهد آنجا بود که زکریا پروردگار را خواند و گفت پروردگارا از جانب خود فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن که تو شنبندی دعای پس در حالی که در مهراب به صلات ایستاده بود ملائک او را ندا دادند که الله تو را به یحیی نوید میدهد که تصدیق کننده کلمه الله است و بزرگوار و پارسا و پیانبری اصالحان است گفت پروردگارا چگونه مرا فرزندی خواهد بود در حالی که پیری من بالا گرفته است و زنم نازاست گفت کار پروردگار چنین است الله هرچی بخواهد خواهد می کند. گفت پروردگارا برای من نشانه قرارده فرمود نشانت این است که سه روز با مردم جز به اشاره سخن نگویی و پروردگارت را بسیار یاد کن و شبانگاه بام دادن او را تسبیح گوی و یاد کن هنگامی که ملائک گفتند ای مریم الله تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برگزیده است ای مریم فرمانبر پروردگار خود باش و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع ما این از اخبار غیب است که به تو وحی می‌کنیم وگرنه وقتی که آنها های خود را می‌افکندند تا کدام یک سرپرستی مریم را به عهده گیرد نزد آنان نبودی و نیز وقتی با یکدیگر کشمکش می‌کردند نزدشان نبودی بشارت تولد عیسی ابن مریم توسط ملائک سوری آل امران آیات 45-63 یاد کن هنگامی را که ملائک گفتند ای مریم الله تو را به کلمی از جانب خود که نامش مسیح عیسی ابن مریم است مجرمی دهد در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاه الله است و در گهواره و در بزرگ سالی با مردم سخن می گوید و از شایستگان است مریم گفت پربردگاه را چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آنکه بشری به من دست نزده است گفت چنین است کار پروردگار الله هرچه به خواهد می آفریند چون به کاری فرماندهد فقط به آن میگوید باش پس می باشد و به او کتاب و حکمت و طورات انجیل می آموزد و او را به عنوان پیامبری به سوی بنی اسرائیل می فرستد که او به آنان میگوید در حقیقت من از جانب پروردگارتان برایتان معجزی آوردهام. من از گل برای شما چیزی به شکل پرنده می سازم. آنگاه در آن میدمم پس به ازن الله پرنده میشود و به ازن الله نابینای مادرزاد و پیس را بهبود میبم و مردگان را زنده می گردانم و شما را از آنچه میخورید و در خانه هایتان ذخیره می کنید خبر میدم. مسلما در این معجزات برای شما اگر مؤمن باشید عبرت است و میگوید آمده ام تا تورات را که پیش از من نازل شده است تصدیق کننده باشم و تا پاره ای از را که بر شما حرام گردیده برای شما حلال کنم و از جانب پروردگارتان برای شما نشانه ای آوردم پس تقوای الهی پیش سازید و مرا اطاعت کنید در حقیقت الله پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرسید که راه راست این است چون عیسی از آنان احساس کف کرد گفت یاران من در راه الله چه کساند؟ حواریون گفتند ما یاران دین اللهیم به الله ایمان آوردیم و گواه باش که ما تسلیم او هستیم پروردگارا به آنچه نازل کردی گرویدیم و فرستاده را پیروی کردیم پس ما را در زمره گواهان بنویس و دشمنان نقشه کشیدن و الله در پاسخشان نقشه در میان آورد و الله بهترین طراحان است یاد کن هنگامی را که الله گفت ای ایسا من تو را برگرفته و به سوی خیش بالا میبرم و تو را از کسانی که کف و پاک میگردانم و تا روز رساخیست کسانی که از تو پیروی کرده اند فوق کسانی که کافر شدند قرار خواهم داد آنگاه فرجام شما به سوی من است پس در آنچه بر سر آن اختلاف می کردید میان شما داوری خواهم کرد اما کسانی که کفرزیدند در دنیا و آخرت به سختی عذابشون کنم و یاورانی نخواهند داشت و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند الله مزشان را به تمامی به آنان می دهد و الله بیدادگران را دوست نمی دارد این هاست که ما آن را از آیات و قرآن حکمت آمیز بر تو می خانیم. در واقع عیسی نزد مثل الله همچون مثل آدم است که او را از خاک آفرید سپس به دو گفت باش پس وجود یافت آنچه درباری عیسی گفته شد حق و از جانب پروردگار توس پس از تردید کنندگان مباش پس هر که در این باره بعد از دانشی که تو را حاصل آمده با تو ستیزه کند بگو بیایید بخوانیم فرزندان ما و فرزندان شما را و زنان ما و زنان شما را و ما و خود شما سپس ادعاهای خودتان را تماما در این مورد بیان کنید پس بفرستیم لعنت الله را بر گویان آری داستان درست مسیح همین است و معبودی جز الله نیست و الله هست که در واقع همان شکست ناپذیر حکیم است پس اگر روی گردان شدن همانا الله به حال مفسدان داناست تولد عیسی بن مریم سوری مریم آیات شانزدهم هم الاسی و در این کتاب از مریم یاد کن انگاه که از کسان خود در مکان شرقی به کنار شتاف و در برابر آنان پردی بر خود گرفت پس روح القدس خود را به سوی او فرستادیم تا به شکل بشری خوشندام بر او نمایان شد. مریم گفت اگر پرهیزکاری من از تو به الله رحمان پناه میبرم گفت من فقط فرستادی پروردگار تو ام برای اینکه به تو پسری پاکیزه ببخشم گفت چگونه من آ پسری باشد با آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبودم گفت فرمان چنین است پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است و تا او را نشانهای برای مردم و رحمتی از جانب خیش قرار دهیم و این دستوری قطعی بود پس مریم به او یعنی عیسی آبستن شد و با او به مکان دورافتادی پناه جست تا درد زایمان او را به سوی تنه درخت خرمای کشانید گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و یک فراموش شده بودم پس از طرف پایین پایش او را صدا زد که مدار پروردگارت زیر پای تو کشمه آبی پدید آورده است و تنه درخت خرما را به طرف خود بگیر و بتکان بر تو خرمای تازه میریزد و بخور و بنوش و دیده روشندار پس اگر کسی از آدمیان را دیدی بگوی من بر الله رحمان روزه ناز کرده هم. و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت پس مریم در حال که او را در آغوش گرفته به نزد قومش آورد گفتن ای مریم به درستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده ای ای خاهر حارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود مریم به سوی ایسا اشاره کرد گفتند چگونه با کسی که در گهواره و کودک هست سخن بگوییم کودک گفت منم بنده الله به من کتاب داده و من را قرار داده است هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به سلات زکات سفارش کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکا کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که می میرم و روزی که زنده برانگیخته می شدم. این است ماجرای عیسی بن مریم همان گفتار درستی که در آن شک می کند. الله را نسزد که فرزندی برگیرد منزه هست او چون کاری را اراده کند همین قدر به آن میگوید موجود شد پس بیدرنگ موجود می شود و در حقیقت الله هست که پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرسید این است راه راست اما دستهای گوناگون از میان آنان به اختلاف پرداختند پس وای بر کسانی که کافر شدند از مشاهده روزی دهشتناک اعتای کتاب و مقدس انجیل به مسیح عیسی ابن مریم از سوی الله تعالی سوره حدید آیات بیست هفتم الا هشتم سپس به دنبال آنان پیامبران خود را پی در پی آوردیم و ایسا پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دلهای کسانی که از او پیروی کردند کردن رعفت و رحمت نهادیم و اما روحانیتی که از پیش خود به وجود آوردند ما آن را بر ایشان مقرر نکردیم مگر برای آنکه کسب رودی الله کنند پس آن را چنان که حق رعایتش بود منظور نداشتند پس پاداش کسانی از ایشان را که ایمان آوردند به آنها دادیم و بسیاری از آنان فاسقند ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیش سازید و به پیامبر او بگروید تا از رحمت خی شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به برکت آن را سپرید و بر شما ببخشاید و الله آمرزنده و مهربان است عیسی بن مریم نشانه روز رساخیز است سوره زخرف آیات 57 هفت الی و پنج و هنگامی که در مورد پسر مریم مثالی آورده شد به ناگاه قوم تو از آن سخن هلهله دارند داختند و اعراض کردند و گفتند آیا معبودان ما بهترند یا او؟ آن مثال را جز از راه جدل برای تو نزدند بلکه آنان مردمی جدال پیشند. ایسا جز ای که بر بی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق و آیتی گردانیده ایم نیست و اگر بخواهیم قطعا به جای شما ملائکی که در روی زمین جانشین شما کردن قرار دهیم و همانا آن نشانی برای رساخیز است پس زنها در آن تردید مکن و از من پیروی کنید این است راه راست و مبادا شیطان شما را از راه بدر برد زیرا او برای شما دشمنی آشکار است و چون عیسی دلائل آشکار آورد گفت براسی برای شما حکمت آوردم و تا در باری بعضی از آنچه در آن اختلاف می کردید برایتان توضیح دم پس از الله بترسید و فرمانم ببرید در حقیقت الله هست که خود پروردگار من و پروردگار شماست پس او را بپرسید این است راه راست تا آنکه از میانشان احزاب دست به اختلاف زدن پس وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردناک الله متعال مسیح عیسی بن مریم را به واسطه نسب و تعییدات روح القدس بر او بر بعضی انبیا فضیلت بخشیده است. سوری بقره آیه 253 برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر فضیلت بخشیدیم. از آنان کسی بود که الله با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تعیید کردیم. و اگر الله میخواست کسانی که بعد از آنان بودند بعد از آن همه دلایل روشن که بر ایشان آمد به کشتار یکدیگر نمیپرداختند ولی با هم اختلاف کردند پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کف ورزیدند و اگر الله میخواست با یکدیگر جنگ نمیکردند ولی الله آنچرا را میخواهد انجام میدهد روح القدس نسب عین عیسی بن مریم میگردد و به واسطه او تعیید می یابد. سوره بقره آیات 87 الی 88 و همانا به موسا کتاب تورات را دادیم و بعد از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه‌های آشکار بخشیدیم و او را با روح القدس تعیید کردیم. پس چرا هرگاه پیامر چیزی را که خوشایند شما نبود برای تن که ورزیدید؟ گروهی را دروگو خواندید و گروهی را کشتید و گفتند دلهای ما پوشیده است. نه چنین نیست بلکه الله به سزای کفرشان لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می چه اندک شمارند؟ ایسا پسر مریم به اذن الله متعال معجزه می کند. سوره مائده آیات 110 الاسد پانزه هم یاد کن هنگامی که الله فرمود ای عیسی پسر مریم نعمت مرا بر خود و بر مادرت به یاد آور آنگاه که تو را به روح القدس تعیید کردم که در گهواره و در بزرگ سالی با مردم سخن گفتی و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و تورات انجیل آموختم و انگاه که به عزد من از گل چیزی به شکل پرنده می ساختی پس در آن می دمیدی و به ازد من پرندهی می شد و کور مادرزاد و پیس را به عزد من شفا می دادی و انگاه که مردگان را به عزد من زنده از قبل بیرون می آوردی و انگاه که آسی به بنی اسرائیل را هنگامی که برای آنان حجتهای آشکار آورده بودی از تو باز داشتم پس کسانی از آن که کافر شده بودند گفتند اینها چیزی جز افسونی آشکار نیست و یاد کن حنگامی را که به حباریون وحک کردیم که به من و فرستاد ایمان آورید گفتند ایمان آوردیم و گواه باش که ما مسلمانیم یاد کن حنگامی را که حواریون گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پربردگارت می تواند از آسمان خانی برای ما فرود آورد ایسا گفت اگر ایمان دارید تقوای الهی پیش سازید گفتند میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما آرام شابد و بدانیم که به ما راست گفتی و بر آن از گواهان باشیم عیسی پسر مریم گفت بار ها پروردگارا از آسمان خانی بر ما فروفرس تا عیدی برای اول و آخر ما باشد و نشانی از جانب تو و ما را روزیده که تو بهترین روزیدهندگانی الله فرمود من آن را برای شما فرو خواهم فرستاد ولی هرکس از شما بعد از آن انکار ورزد وی را چنان عذابی کنم که هیچیک از جهانیان را آنچنان عذاب نکرده باشم حواریون عیسی بن مریم میگویند ما یاران الله هستیم سوری صف آیه چهارده ای کسانی که ایمان آوردید یاران الله باشید همانگونی که ایسا پسر مریم به هفوارین گفت یاران من در راه الله چه کسانی هند؟ گفتند گفتن ما یاران الله هستیم پس طایفی کف ورزیدن و کسانی که گرویده بودن بر دشمنانشان یاری کردیم تا چیره شود؟ ادعای پوچ و دروغین یهود مبنی بر صلیب کشیدن مسیح عیسی سبر مریم توسط ایشان سوری نسا آیات 155 الی 162 پس به سزای پیمان شکنیشان یعنی پیمان شکنی یهود و انکارشان نسبت به آیات الله و کشتار ناحق آنان از انبیا و گفتارشان که دل‌های ما پوشیده است لعنتشان کردیم بلکه الله به خاطر کفرشان بر دلهایشان محزده و در نتیجه جز شماری اندک از ایشان ایمان نمی آورن. و نیز به سزای کفرشان و آن تهمت بزرگی که به مریم زدند و گفته ایشان که ما مسیح ای سبر مریم پیامبر الله را کشیم و حال آنکه آنان او را نكشند و مسلوبش نکردن لیکن به سوی ایشان برگشت و کسانی که در باری او اختلاف کردند قطعا در مورد آن دچار شک شده و هیچ علمی بدان ندارند جز آنکه از گمان پیروی میکنن و یقینا یعنی یهود کفار بنی اسرائیل او را نکشتند بلکه الله او را به سوی خود بالا برد و الله توانا و حکیم است و از اهل کتاب کسی نیست مگر آنکه پیش از مرگ خود حتما به او ایمان می آورد و روز قیامت ایسانیز نیز بر آن شاهد خواهد بود پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه بسیاری از مردم را از راه الله باز داشتند چیزهای پاکیزی را که بر آنان حلال شده بود حرام گردانیدیم و به سبب ربا گرفتنشان با آنکه از آن نه شده بودند و به ناروا مال مردم خوردنشان و ما برای کافران آنان عذابی دردناک آماده کردیم لیکن راسخان آنان در دانش و مؤمنان به آنچه بر تو نازر شده و به آنچه پیش از تو نازر گردیده ایمان دارند و خوشا بر گذاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به الله و روز رساهی که به زودی به آنان پاداشی بزرگ خواهیم داد نکته مهم و کلیدی اینه که زمیر هم در آیات 156 و 157 سوری نسا با توجه به آیات قبل به یهودیان برمیگرده قرآن کریم تاکید میکنه که این یهودیان نبودند که مسیح را مصلوب کرده و به قتل رساندند بلکه همانطور که در کتب قبل از انجیل نبوت شده بود مانند زبور و کتاب اشیا همان امتها مسیح را به سری یعنی تأکید بر فائلیت امر طبق نبوتها میکنه فلذا قرآن ادعاهای دروغین یهود مبنی بر اینکه ما مسیح رو کشتیم رو تکذیب میکنه و فاعلیت کار رو طبق نبوت کتب و طبق نسل سری کتاب و مقدس انجیل از آن و امتها یعنی رومیان عنوان رو میکنه قرآن مبین همچنین بر بازگشت مسیح تأکید میکنه و میفرماید ولیکن شب حلهم یعنی ولیکن بازگردانده شد سوی ایشان یعنی سوی یهودیان پس قرآن مستاق انجیله و در این حال ادعای یهود مبنی بر کشتن مسیح عیسی ابن مریم رو تکذیب میکنه آری مسیح عیسی سبن مریم مطابق نس سریح چهار صحیفه انجیل و همچنین نبوت های مکتوب در زبور به دست امت ها یعنی رومیان به صلیب کشیده میشه. مسیح بعد از سه روز به الله اللازه نمیشه و بعد از حضور در بین مردم و حواریون به اذن الله متعال در آسمان اروج میکنه. رابطه عیسی سبن مریم به واسطه مرگش با دنیای فانی منقطع می‌گردد سوره مائده آیات 116 الی 120 و یاد کن هنگامی را که الله فرمود ای عیسی پسر مریم آیا تو به مردم گفتی من و مادرم را همچون دو الله به جای الله بپرسید؟ گفت منزهی تو مرا نسزد که درباره خیشتن چیزی را که حق من نیست بگویم اگر آن را گفته بودم قطعاً آن را میدانستی، آنچه در نفس من است و می‌دانی و آنکه در ذات تو است من نمی‌دانم چرا که تو خود دانای رازهای نهانی جز آنچه مرا بدان فرمان دادی چیزی به آنم نگفتم گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را عبادت کنید و تا وقتی در میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون مرا برگرفتی تو خود بر آنان نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی اگر عذابشان کنی آنان بندگان تو اند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود توانا و حکیمی الله فرمود این روزی است که راستگویان را راستیشان سود بخشد برای آنان باغهایی است که از زیر درختان آن نرها روان است همیشه در آن جاودانند الله از آنان خوشنود است و آنان نیز از او خوش دودند. این است رسگاری بزرگ فرمان روای آسمان ها و زمین به آنچه در در آنهاست از آن الله هست و او بر هر چیزی تواناست نفی عقیده کافرانه تسلیسی سوری نسا آیات 171-172 ای اهل کتاب در دین خود قلوب مکنید و در باری الله جز سخن درست مگویید مسیح عیسی ابن مریم فقط پیامبر الله و کلمه اوست که آن را به سوی مریم افکنده و طریقتی از جانب اوست پس به الله و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید الله سگانه است بعضی اسید که برای شما بهتر است الله فقط معبود یگانه است منزه از آن است که برای او فرزندی یعنی واسطه ای باشد آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن الله است و الله بس کارساز است مسی از اینکه بنده الله باشد هرگز ابا نمی ورزد و که مقرب نیز ابا دارند و هرکس از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد به زودی همه آنان را به سوی خود می آورد مسی عیسی ابن مریم آخرین رسول قوم بنی اسرائیل است سوره بقره آیات 87 88 و همانا به موسی کتاب تورات را دادیم و بعد از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزهای آشکار بخشیدیم و او را با روح القدس تعیید کردیم پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برای تن آورد که برزیدید؟ گروهی را دروگو خاندید و گروهی را کشید و گفتند دلهای ما پوشیده است نه چنین نیست که الله به سزای کفرشان لعنتشان کرده است پس آنان که ایمان می آورند چه اندک شمارند نفی الوهیت عیسی ابن مریم سوره توبه آیات 30 الی 5. و یهود گفتند ازیر واسطه الله است و نصارا گفتند مسی واسطه الله است این سخنی است باطل که به زبان می آورن. و به گفتار کسانی که پیش از این کافر شده اند شباهت دارد الله آنان را بکشد چگونه از حق بازگردانده میشوند اینان خبرگان و روحانیون خود و مسیح پسر مریم را به جای الله به علوهیت گرفتند با آنکه معمود نبودند جز اینکه الله یگانه را بپرسند که هیچ معبودی جز او نیست منزه است او از آنچه با شریک میگردانند میخواهند نور الله را با سخنان خیش خاموش کنند ولی الله نمیگذارد تا نور خود را کامل کند هرچند کافران را خوش نیاید او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین است پیروز گرداند هرچند مشرکان خوش نداشته باشند ای کسانی که ایمان آوردید بسیاری از خبرگان یهود و روحانیون انبال مردم را به ناروا میخورند و آنان را از راه الله باز میدارند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه نمی کنند و آن را در راه الله هزینه نمی کنند ایشان را از عذابی دردنا خبرده و روزی که آن گنجینه را در آتش جهنم بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آنها داغ کنند و گویند این است آنچه برای خود اندوختید پس کیفر آن را می اندوختید بچشید و نیز پیرامون نفی عقیده باطل مبنی بر الوهیت عیسی بن مریم در سوره مائده آیه 17 میفرماید کسانی که گفتند الله همان مسیح پسر مریم است مسلما کافر شدهاند. بگو اگر الله اراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر کرا که در زمین است جملگی به حلاکت رساند چه کسی در مقابل الله اختیاری دارد فرمان رب آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن الله است هر را بخواهد می آفریند. و الله بر هر چیزی تواناست و همچنین سوره مائده آیات 72 اله 80 یکم این گونه کسانی که گفتند الله همون مسیح پسر مریم است قطعا کافر شده اند و حالا که مسیح می گفت ای فرزندان اسرائیل پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرسید که هر کس به الله شرک آورد قطعا الله بهش را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتش است و برای ستمکاران یاورانی نیست کسانی که به تسلیس قائل شده و گفتند الله سومین شخص از سه شخص یا سه اغنوم است قطعا کافر شدند و حالا که هیچ معبودی جز الله یگانه نیست و اگر از آنچه میگویند باز نئیسند به کافران ایشان عذابی درد خواهد رسید چرا به درگاه الله توبه نمی کنند و از وی آمرزش نمی و الله آموزنده و مهبان است مسیح پسر مریم جز پیامبری نبود که پیش از او نیز پیامبرانی آمده بودند و مادرش زنی بسیار راسکو بود هر دو قضا می خورند بنگر چگونه آیات خود را برای آنان توضیح می دهیم پس ببین چگونه از حقیقت دور می افتند. بگو آیا غیر از الله چیزی را که اختیار زیان و سود شما را ندارد می پرسید؟ و حالا که الله شنوای داناست؟ بگو ای اهل کتاب در دین خود به ناحق گذافه گویی نکنید و از پی حبس های گروهی که پیش از این گمراه کشتند و بسیاری از مردم را گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند نروید. از میان فرزندان اسرائیل آنان که کوفر به زبان داوود و عیسی ابن مریم مورد لعنت قرار گرفتن این کیفر به خاطر آن بود که اسیانی برزیده و از فرمان الله تجاوز می و از کارزشی که آن را مرتکب می یکدیگر یک را باز نمی داشتن راسی چه بد بود آنچه می بسیاری از آنان را می کسانی که کفر زیده اند را به سرپرستی می راسی چه زشت از آنچه برای خود پیش فرسادن که در نتیجه الله بر ایشان خشم گرفت و پیوسه در عذابی مانند و اگر به الله و پیامبر و آنچه که به سوی او فرود آمده ایمان می آنان آنون را به سرپرستی نمی گرفتند لیکن بسیاری از ایشان نافرمانند احمد همان روح القدس یا روح الامین است سوره صف آیات ششم شش اله هفتم و هنگامی که عیسی پسر مریم گفت ای فرزندان اسرائیل من فرستادی الله به سوی شما هستم تورات را که پیش از من بوده تصدیق می کنم و به فرستادی که بعد از من می آید و نام او احمد روح الراسی و روح القدس است پشارت کنم پس وقتی برای آنان دلایل روشن آمد گفتند این سهری آشکار است و چه کسی ستم کارتر از آن کسی است که با وجود آنکه به سوی اسلام فرا می شود بر الله درو می بندد و الله مردم ستمگر را راه نمی نماید در سوری صف آیه ششم و عده اومدن احمد از انجیل نقل قول شده نه محمد نبی احمد وچه تسمیه همون روح القدس یا روح العمینه که مسیح عیسی ابن مریم به شارت اومدن اون رو در باب چهارده و شانزدهم زهم یوحنا از انجیل داده این سخنان را به شما گفتم وقتی که با شما بودم لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من میفرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد انجیل صحیفه یوحنا فصل چهاردهم آیات بیست و پنج الی بیست و شش پس رسولی که مسیح بشارت داده دارای دو عملکرد تعلیم و یادآورییه اولا او سخنان مسیح عیسی بن مریم رو به حواریون تعلیم خواهد داد ثانیا او هر آنچه مسیح عیسی بن مریم قبل از صعود به آسمان گفته رو به یاد حواریون میاره به این مهم در فصل شانزدهم صحیفه یوحنا آیات دوازده الی شانزدهم نیز اشاره شده و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لاکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید ولیکن چون او یعنی روح راسی آید شما را به جمیع راسی هدایت خواهد کرد زیرا که او از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد هرچه از آن پدر است از آن من است از این جهت گفتم که از آنچه آن من است می گیرد و به شما خبر خواهد داد بعد از اندکی مرا نخواهی دید و بعد از اندکی باز مرا خواهی دید زیرا که نزد پدر میروم. نتیجه آنچه که در آیه شش سوری صف به آن اشاره شده همان روح راسی یا روح القدس ذکر شده در انجیل صحیفه یوحناس این روح که بعد از صعود مسیح بر حواریون قرار میگیرد، تحت نظارت الله ایشان را تعلیم داده و سخنان مسیح رو به یاد حواریون خواهد آورد. پس احمد موجود در سوره صف همان روح راسی و روح القدس است و هیچ ارتباطی به شخصی به نام محمد نبی که قرنها بعد در قومی امی یعنی بی اطلاع از کتاب و ایمان به رسالت برگزیده شده ندارد. در آخر از اینکه به سخنان بنده پیرامون موضوع مسیح عیسی ابن مریم گوش کردید کمال تشکر دارم پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش جهنم دور نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته